اذا فتحت لنا بلد اقمنا حدود الله و انقشعات ضبابو اید در جوامیه که سیر انتشار پیدا میکنه ایطور دوکانه باشه برای گروبراهی مردم و کسی نمیتنه جلوگیری زکنه بخاطر اینا مشروعیت فسق و فساد شیطانت چی میگیرن؟ از قانون میگیرن ایدارت به این میکنی قانون کشور کفری است و کسی که در قانون است اینا کفار و اینا باید جگ ببینن اگر نظام اسلامی قام شده خواربرادرم متوجیب باشه اگر نظام اسلامی با اذن الله ان شاء الله قائم شود بیشتر مشکلات حل میشه دیجیوامیا سیر نمی باشه شراب خوری نمی باشه فساد اخلاقی نمی باشه بینمازی نمی باشه همه مشکلات حل میشه حتی مشکل دادوت گرای ک دادوت سود بایی نام بیشتر مردمو شکم آخده سیر کرده آت دوکانای جناب باست میشه بیشتر که متوجیب باشه به بنام دعوت باز که آخر گرای کرد از خاطر ما میشه به بمیاسن که ما کوششای خدا همه را باید مسای خدا همه یک جای کنیم به خ اقامه نظام اسلامي بخاطر اقامه نظام اسلامي فقد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 لحظات خبری صدای خلافت السلام <تصفيق> علیکم <تصفيق> و رحمت الله و برکاته با خبرهای ولایت خراسان خوش آمدید امروز یک شنبه 16 رجب سال 1437 هجری حوالی صبح امروز در منطقه نره و ملشه های پاکستانی حمله وسی را به هدف تسخیر دوباره این منطقه آغاز نمودند، اما با فضل الله تعالی این حمله ایشان به عقب رانده شد. در اثر این جنگ چارتن از این ملیشه ها کشته میل کلاشینکوف، یک میل دشکه و تعداد مخابره هم غنیمت گردید. این در حال است که چند قبل منطقه نریوب و به کنترول مجاهدین خلافت اسلامی درآمده بود و در آن در گیری ها نیز چارتن از ملشه های ISI کشته شده بودند. یک رداموتر رنجر نیروهای مرتد افغانی از سوی مجاهدین خلافت اسلامی در شهر جلال آباد شکار انفجار ماین گردیده و تمام سرنیشنانش کشته شدند. دیوان حزبه در مناطق پیخه و عدلخیل افراد جدید را به مسئولیت گماشتند، قرار است تفراد انتخاب شدن مردم را از نواهی الله تعالی من و به عوامر الله تعالی امر نمایند و آن چیزهایی که از جمله منکرات است که در اعلامیه دیروز نشر شد از منطقه پاکسازی کنند. مسئولین اداره دعوت از مناطق کوت و گرگری دیدن نمودند. در این دیدار به مسئولین ما تحت کار سپرده شده و به آنها توسیه شد تا متوجه نکات منفیشان باشند. و خبر اخیر این که اداره معرف دولت اسلامی تعداده از کتب نصاب تعلیمی را چاپ و به خاطر تدریس به مدارس توزیه نمود. این کتاب شامل مزامین عقیدوی اجتماعی سیاسی و فرهنگی بوده و در سنف مختلف مکاتب تحت اداره خلافت اسلامی تدریس می گردد. این بود اخبار ولایت خراسان حال توجهتان را به اخبار ولایت دیگر خلافت اسلامی جلب می دارم. لحظات خبری سرای خلافت گزارش‌های همه جانبه از فعالیت‌ها و پیشروی های دولت اسلامی در تمام جهان لحظات خبری سرای خلافت شماره از حقایق و معلومات تازه و دقیق با خبر میسازد و از تبلغات دروغین رسانه های غربی پرده برمیدارد. لحظات خبری صلاح خلافت. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با خبرهای جهانی خلافت اسلامی خوش آمدید. امروز یک شنبه 16 رجب سال 1437 هجری قمری. نخست خبرهای خود را با مهمترین عناوین آغاز می کنیم. کشته و زخمی شدن حداقل اقل پینجام در حمله شهادت طلبانه در یکی از موابیدی رافیزی در ولایت جنوب. عملیات شهادت طلبانه بر یک از سنگرهای پیشمرگه مرتد در سینجار در ولایت جزیره. خسارت های روحی و زخایر در صفوف ارتش مصری در عیده از عملیات سربازان خلافت اسلامی در سینا. ابتدا از ولایت جنوب شروع می‌کنیم. دو حمله کننده استشادی دولت اسلامی به های ابو عثمان انصاری و ابو مغیر انصاری موفق به انجام حمله استشادی در یک معبد رافیزی مشرق در منطقه رزوانیه شدند. پیش از آن که کمربند انفجاریشان را منفجر کنند با نگهبانان معبد درگیر شدند که به حلاکت و زخمی شدنی حدود تن از آنان انجامید. در ولایت جزیره سیتان از استشادیان خلافت اسلامی وارد پایگاه های پیشمرگه مرتد در دومیز سنجار شده با اصلیحه های و سنگین با آنها درگیر شدند برادر ابو یعقوب انصاری کمربند انفجاریش را در وسط نیرهای مرتد منفجر کرد که به حلاکت و زخمی شدن عده از آنها شد و برادران دیگر به سلامتی به مواقع خود بازگشتند الحمد. در ولایت سینا مجاهدین خلافت اسلامی موفق شدند تا چندین ماین کنار جاده را بر سربازان و تجهیزات ارتش مصر منفجر کنند. دو گروه از سربازان پیاده در مناطق المیدان در غرب شهری عریش و منطقه وحشی در جنوب شهری شیخ زویت آماج انفجار ماین قرار گرفتند. که منجر به کشته و زخمی شدن تعدادی از آنها گردید. در همین حال یک انفجار دیگر یک اراده تانک ارتش مصر از نوع ام 6 نزدیک گزرگای از و یک تانک نوع همر در راه عمومی شهرهای عریش و رفع آماج انفجار ماینهای ما جاسازش شده قرار گرفتند. در این حال تکتیر اندازان خلافت اسلامی دو سروازی دیگر مصر را در منطقه ابو جراد کشتند که در کل این عملیات ها بیش از ده مرتد مصری کشته و تعدادی هم زخم برداشتند. در ولایت جزیره برادر استشادی ابو حاریس انصاری با موتر بم گزاری شده باره مرتدینی که خواهان پیشتوی بسای خطات مجاهدین در منطقه روفه در الکرمه شده بودن حمله کرد که منجر به کشته و زخمی شدن عده از آنها گردید. پس از این حمله ارتش دشمن با ترک اسلحه و اجسادشان مجبور به عقب نشینی شدند. در ولایت کرکوک، مجاهدین خلافت اسلامی چندین خدروی پیشمرگه های مرتد را با اصلیحه سقیله هدف قرار داد از بین بردن. همچنان در یک انفجار دیگر یک خدروی دیگری همین نیروها در منطقه از زورکه از بین رفته و تمام سرنشینان آن کشته شدند. در ولایت صلاح الدین، مجاهدین دولت اسلامی به سوی خندق‌های نیروهای رافضی در نزدیکی القناطر و جاده ارتباطی بین شهرهای بیجی و حدیثه با اسلحه سبک و سنگین حمله کردند در این حمله زرباتی به دشمن وارد گردید این بود خبرها از ولایت‌های مختلف دولت اسلامی منهج تا منهج برنامه‌ی فکری سیاسی نظامی و پس منظر نظام و نظامداری در مفاهیم شرعی در کل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 این برنامه را یک شمب شب ها و شب ها از رادیو صدای خلافت فراموش نکنید. شنونده های راژیو خلافت السلام علیکم و رحمت الله و برکاته شما را خوش آمدید میگم به برنامه من حج تا من در این برنامه استاد احرار مهمان برنامه ماست خب شنوانده های گرامی اینکه سالها کفار با همکاری مرتدین توسط برنامه های مبتزل مسلمان ها را فریب دادند ما خواستیم که برنامه را را اندازی بکنیم تا باشد که برادران و خواهران ما از حقایق باخبر شوند خب استاد محترم امشب میخواهیم که بالای این موضوع سخن بگوییم که منحجی بودن و غیر منحجی بودن چیست؟ چند خونه مسلمانان این سرزمین ریخت ولی مقاصد جهاد بالای خونشان مرتب نشد چرا؟ تشکر از اینکه بر ما وقت دادن الحمد لله وحده و والسلام على من الله نبی بعد فاوض بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ويسر لی أمری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولي وقالت تعالى وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين كله لله اما بعد در این شک نیست که ماوسیره که شما مطرح ساختین یا سوال که متوجه بنده ساختین یعنی کلا بحث میبره بالای فکری بودن و غیر فکری بودن بله خب پیش از اینکه وارد بحث شوم می که یک پیش مقدمه بیندازم و مقدمه را میخوام با این الفاظ آغاز کنم که تعداد آل هم به فکر این نظر این نظر میان توهین که تاریخ صدر اسلام تکرار ناپذیر است و دیگر مادران اسلام فرزندان مبارز و عدالت را در دامان خوش پرورش نمی دن ولی تاریخ و عصر که ما در, در آن زندگی می این بندار را کاملا نقش بر آب ثابت گشتند. در یکی از آیات قرآن الله سبحانه وتعالی، می که میخواهند نور الله عز را با دهانهایشان خاموش گردانند، ولی الله نور و شریعت خود را کامل گرداند، هرچند که کافران دوست نداشته باشند. و در یک جای به قول از یک عالم الله عزوجل آن ملت را سروری داد که تقدیرش به دست خویش بنوشت با آن ملت الله کاری ندارد که دقانش برای دیگران کشت موضوع مشخصا سر فکری بودن و غیر فکری بودن متمرکز است یعنی در این شکه وجود ندارد که در افغانستان مردم همیشه در برابر اجنبی ها به پا خواستن و مبارزه کرده و خون ریختاندن ولی مقاصدی که از خون زوا باید با خود نتیجه میاورد نتیجه بالای آن مرتب نشده همین آیت قرآن کردیم و قاتلوهم حتی لا تکون فتنه و یکون دین کلوه لله که فتنه ختم شوه، و دین از آن الله سبحانه و باشه یعنی نهایت امر عبد الرحمن سعدی رحمه الله می در تیصیر رحمان در تفسیر راستین که مقصد جهاد امی است که وقتی که خون مسلمان می ریزه باید در اونجا نتایج مرتب شد ولی خون کدام مسلمان با قول یکی از استادان که یک کتاب ارزنده فکری را به زبان و فارسی تعلیف کرده او میگه در یکی از نقل قولهای خود که بین جنگ و جهاد فرق است جنگ کس الله سبحانه وتعالی جنگ خوش نداره بله. یک چیز کره هست ولی جهاد کس یک عبادت است. وقت جیهادی یک مسلمان عبادت میشه که غیر شعای فکر و توحید باشه یعنی واقعا بقیل یکی از علمای دیگری، او میگه میگه هر هو حرکت هر هو جهد مجاهده و هر هو سرگردانی و هر محرومیت و مظلومیت که زیر شاید دین نباشد پس ای یک مسابقه حیوانی است امی حرکتهایی که در گذشته یعنی به وقوع پیوست این حرکتا ها زیر یک فکر نبود اگر کلن زیر یک فکر میبود یا متفرق نمیشدن امی زیاد حق مرتد شش حزب در پاکستان تأسیس کرد و نو حزب در ایران تأسیس شد یعنی این هم یک نقطه بارز بود که عدم فکری بودن مجاهدین دور روس نشان میدهد که دوش ها دوش شویه های رافزی کافر و مرتد کسانی که بر رجال اسلامی ما توحین کسانی که با عیشه را دلانها میکنند افت مادر ما را زیر سوال میبرند دوش دوش از اونها جنگ میکرد و قول یکی از استادان استاد احمد رحمه الله میفرماید که اینها به حد بفکری بودن که وقتی که افغانستان یعنی کلا افغانستان فتحه شد تقریبا دو ماه یا سه ما شورای هل و عقد یعنی شورایی که از مجاهدین سرپرستی میکرد و خبرگان مجاهدین در اونجا کلام میکردن و رای میدادن و تطبیق میشد دو ماه یا سه ما می میگه اینها میگه مشوره میکردن که خلافت یا امارات یا نظام سیاسی را به ترتیب رسول الله صلی الله علیه بیاوریم و یا به ترتیب خلفای راشدین استاد حمزای رحمه الله در جواب این سوال میگفت که امی خلافت شما به مروان بن عبدالملک حجاج بن یوسف و یزید می آوردید که کلن مردم اینها را به عنوان کسانی میشناسن که بالای رعیت زیادی میکردن کردند. را چند دس به امریکایی ها این ای هم یک مثال زنده از بفکر بودن همی مجاهدین پیشین بود که رهبران اینها به حد فکر بودن که منحج و مقصد خدا نمیشناختن اگر مشناختن امروز زیر بیرق صلیب اینها استاده نمیشنن یعنی همین هدفشان اساسی نبود این هدف هدف اصلا نمیشناختن ما باز هم سرازی ترکیز میکنم که کلا در اینمی غیر از خلافت اسلامی و غیر از بعض جماعت ها دیگر به بساوب نامعلوم روان بودن اگرچه های بزرگ داشتند، خو جای تعصف این بود که آمان ادعاها را در عمل اینا بر ما تمثیل نکردن با قول مام ابن قیم جوزی کسی از سوال کرد که امی فرق ما با مردم پیشین چی است. او گفت بس. مردم پیشین علا سبیل عمل موحدین بود یعنی سخن که میگفتن سخنشان در عملشان تصدیق بود یعنی سخن را عمل تمثیل میکردن ولی ما کسیم مردم کلام هستیم یعنی بیشتر احزاب کلام میکردن و جانب عملی را زیاد سرش چی نمیکرمی بود که در جهاد پیشین امون مقاصد جهاد بالای جهاد از اینها مرتب نشد به سبب چی؟ چون اگر یک نفر ریشه میتراشید کلا پالای ازو پابندی در مراکز نبود <تصفيق> یک نفر سر نماز پابندی میکد نمیکد مردم مخلص هم بود یک چند قید اخلاقی بالای اینها میلگانیم ولی در کل مردم به صحب نامعلوم روان بود اگر به نامعلوم روان نمی بودن تعداد کسی از برادرها اینجا شهید شد خود در نهایت شهادتشان دیل الله سمانه و تعالی در بین دو هزار نفر تطبیق شد امروز هم یک کسی که در سرزمین خلافت گم می برداره احساس میکنه که اینجا دین الله تطبیق میشه واجه چیز که اینجا ف... اینجا حرکت جهد مجاهده زیر یک فکر آمده مم. یعنی مجاهد وقتی که جهاد میکنه جهادش زیر شوه دین و چی چیست امروز باز هم اگر فکر فرا نگیریم حرکت های خود زیر فکر اسلامی نیاریم پس شما هم مثل گذشتگان زیر بیرق صلیب خواهد استاد شدین الله خیر خب استاد محترم موضوع ما بالای این چرخه که فکری بودن و غیر فکری بودن یعنی چی؟ فکری بودن به این, این معنا که بعض وقت باز وقت, وقت برادرا از ما یک استاد بود او میگف به خراسان بعض اوقات جنت پشت دروازه مردم میاید ولی به این که دروازه را باز کنه می جنت داخل کنه یعنی اسباب که انسان وصل میکنه به آخرت یک آخرت سازنده را رقم میزند زند واقعا در طول تاریخ افغانستان نزدیک انفلاق کرده یکی از او مثالش همی خلافت اسلامی است که در بغل گوش ما صدای خلافت بالا شد و یکی از برادرها در شام بود اونا بعضی اوقات با ما مزح میکرد میگفت که شما اگر رقه و شام و مرکز خلافت آمده نمیتونین استطاعت ندارین به یک هزار کلدار میتوانید به سرزمین خلافت در پالوی خانه هایتان برسین همون مثالش مثال فکری بودن همین است که <تصفح> یکی از برادرها قصه می کرد در پاکستان در یکی از زندانها ها بندی بود میگه عجیب،, عجیب قصه ها را ما اونجا میشونیدیم خاصتاً بین مجاهد خارجی و مجاهد داخلی مقصدش از مجاهد داخلی مجاهد افغانستان و مجاهد پاکستان بود و مجاهد خارجی عربا بود و مجاهد خاصتاً مردم ترکستان شرقی کتزیا بندی بود میگه افغانها و مجاهدین داخلی که خواب میدیدن اگر خواب میدیدن که ما جنت میریم یعنی معمولی بود که کلا خوابه ها را به ای تعبیر میکردن که ما زندان خارج ولی مجاهدین خارجی معمولی بود که هر خواب تعبیر به این میکردن که اینمی سختی های را که ما در داخل زندان می این اینمی سختی ها کلش رای حق است یعنی یک ده. وسیله از وسائل است که ما را به حق وصل میکنه الله از ما راضی میشه و یک آخرت سازنده را ما رقم میزنه که یکی از این مجاهدین یک مجاهد ترکستان شرقی بود ترکستان شرقی یک بخش از چین است همو کشوری است همو بخشی است که پارسال بالای آنها روزه تحریم شد یکی از شاگردای ما بود اونها که از ترکستان شرقی بود او قسم میکرد نقل قول می میکرد که هر دو طفل که پیدا میشه سیومش میکشن یعنی در خانواده مم. مسلمان اضافه تر از دو طفل زیاد اجازه نیست یک مسلمان ترکستان شرقی در داخل زندان مگه بود مگه عجیب و خرایب قصه ها دار مگه یکی از خوبی های شی بود که در داخل زندان ای با زن و اطفال خود بندی بود و یک مسئله واضح است که پاکستان یا اداره استخباراتی پاکستان از مرتد ما توقع رو نمی کنیم که سرماش فقط کنه چون ما می که وقتی که یک نفر غدار در حق دین الله واقع شد او در حق توم هم غداری میکنه یعنی سر هم زیاتی میکنه و یک مسئله ثابت است که به هیایی سر مسلمانان در آنجا شده یک برادر قسم میکرد میگه که رفتم از برادرای تحریک بود و میگه چاپامت دو و که من زندگی میکردم میگه خودم برامدم دختر دخترش سالی مرا فوج پاکستان برداشت و اداره مخفی پاکستان کلن این یک مسئله قبول شده که بالای سیاسرهای مسلمانان به هیایی و این خوب مطمئن بود که دمی داخل زندان سیاسر من مطمئن و محفوظ نیستک چون مرتدین خلیز هست خب باز هم وقتی که افغانها یک مزاج بانداری داشتن و کلن که محافظین چی میکردن؟ باندار میکردن و این دا داخل زندان هم میگفت که که از اینا صحبت نکنین اینا مرتدین هستن دشمنان علاس گوش جنگانده بود که چه قسم به یه حرکت آمدی میگه ما وسایل موسیقی رو می نواختم یکی از روزها داخل مسجد شدم و نهایتم را از یک وز متاثر شدم و تصمیم گرفتم که از یک کار خود چی کنم اجتناب کنم و امیده می فهمیدم که مجاهدین در وزیرستان جمع میشن. قصه کوتا میگه مگه مسئله مسالر کتی فامیلم یک جای کردم و نهایت امر سفر کردیم در کویتا صرف فوج پاکستان گرفتار شدیم بله. و هر خبری که میدید تعبیرش این میکرد که دمی میجا ما سخت تیر میکنیم این میرای حق هست. ای و ایر میگف کس بازبرش برش گفته بود که بعد از این چی میکنی گفت که ما یک ده سال اینجا سپری میکنیم بعد از اونجا از اینجا ما رو میگیرن با حکومت چین میدهند. بعد زو اگر باز ما حکومت چین گذاشت باز کار میکنم باز فامیل خود یک جا میکنم میام طرف مجاهدین این یک مثال زنده یک مجاهد فکریستک مردم ما به حد بخ... بدبخت است که در چند میتریش مراکز مجاهدین است ولی نمیدانم که در داخل از این مرکز چند نفر مجاهد است و فضایل که داخل مرکز است خود بالای مجاهد نیست خود تو هم مکلف هستی که داخل مرکز بری از فضایل خود برخوردار بسازی که تا یک آخرت را... بعض کسا بزنه. تحت وسواس شیطانی رفتن یعنی جهاد برایشان بسیار کار دشوار معلوم میشه. اگه بر ما بگی که فرق یک مسلمان که زیر صاحی خلافت اسلامی زندگی میکنه و دیگر جماعات و احزاب چیست؟ یکی خود نظام های تاغوتی است کسانه که در زیر نظام های تاغوتی زیر یک مدیریت جهادی زندگی میکنند مردم نه. وا بظاہر دیره... مردم هستند که اونا غیر از مدیریت جهادی زندگی میکنن که و مجرم هستند نباید زندگی کنن بلد. چون من آمده یعنی که بعضی آه... احزاب دیگه یکی آه. حرکت ما یک حرکت سازنده و یک حرکت فکری خلافت اسلامی کنم پدیده جدید نیست که ما بر از این دلایل بتراشیم بلکه چیزی است که بیش از 97 سال خلافت اموی و 500 سال بیشتر خلافت عباسی و 500 سال خلافت یعنی تقریبا 12 سال خلافت تا 19-24 خلافت بوده بعد از از خلافت مردم محروم بوده ولی بعض جماعات ها بوده که اونا به خاطر خلافت کار میکرد نهایت امی کارها باعث شده که در 2013 و در نهایتش خلافت چی شده؟ اعاده شده توسط یکی از رهبران جهان اسلام ابوبکر بغدادی ولی حرکت ما همی حرکت ما یک حرکت فکری است ما بعضی اوقات سخنه در بین میگم که اگر همی فکر ما داخل یک جماعت یا یک عصب سیاسی ظهور میکد شاید نقشه شده یک ما مردم ختم میکند دشمنان ولی چون حرکت زیر یک نظام است و او نظام یک نظام است که مبتنی بر فکر است و او فکر فکر اسلامی و آسمانی و ثابت است که الله که این هذا القرآن یهدی للتی هی اقوى. یعنی یک فکر ثابت و یک فکر محکم است که امکان تغییر در متونش وجود نداره یعنی از چارده سال به ایسو اینمی نظام به اینوان یک،, یک،, یک عرکت بوده آل آمدیم همی احزاب دیگر حتی ما در یکی از بیانه های خود یه گفته بود که پیش ما در مقابل احزاب و جماعتها مبارزه میکردیم تورست یا دحشه از بین بردیم به اسطلاح آنها ولی حالا می میگه میگه جنگ ما علی فکر است یعنی دولت سلامید یک فکر گفته و امیه است که اطلاف جهان تمامش مش در تشکیل کردن و کمپاین کردن و بیا علی دولت اسلامی میشورند و می تازن یعنی فرق عمده اعزار بسیار زیاد است مثلا به طور مثال هشت لک نفر سالانه در ریوان تجمع میکنه اجتماع بسیار بزرگ است. باید. یا مثلا فضل رحمان مرتد سالانه هر سال چند بار کنفرانس می که بش از هشت هزار ده هزار نفره یا در در ایدگاه کابل تبلیغیات تجم میکنن این مرتین امنییته مختلف دینی هست سک و مسلمانان که میخوان اجتماع کنند زیر یک نظام اسلامی باز این آمریکایی ها نمیخواد کلانترین فرقی نمی است که اونها یعنی در فضای آزاد اظهار افکار کنند. ولی ما در فضای آزاد اظهار از افکار کرده نمیتونیم چون ما در پالوی ف... در پالوی افکار خود نظامو میخوایم یعنی محض افکار اخلاقی را ما نمیخوایم بلکه نظام نظامداری ده. به عنوان یک اصل مبرم در زندگی خود میپندارم و یک فرق عمده است که امروز میبینیم که بیشترین فشار متوجه خراسانی هاست چرا؟ اما خراسانی که دیروز در زیر چتر امارت نامنهاد اسلامی پاکستانی بود او برشد یک کشور تخفیف بود اگر در تحریک بود تداوی مریض و زخمیش در اینمی صحتامی جلال میشد و برشان کارتا توضیح کرده بودند اینمی یا اینا چی میکردن رفت و آمد میکردن و هیچ مشکل نداشت حتی مرتددین سلام برشان میداد و اگر پاکستان بود افغانستان کار میکرد در پاکستان برش تخفیف بود در کمپلکس تداویش میشد و در دیگر جای ولی امروز یک مجاهد خراسانی تداویش مشخص دینمی جو میشه چون فکرش تغییر کرده و زدن یک خراسانی این کفار کار میگه چون اینا هم فرق قائل است به قول سید قطب رحمه الله که امی کفار با نفس عباداتی که در چوکات اخلاق انجام می شود کار نداره بلکه به اونو مسلمان کار داره که در یک دستش قرآن است و در دست دیگهش باروت و اسلحه است یعنی تطبیق قرآن با اینمی اسلحه و باروت میخواهد و با مسلمان کار دارد که جهاد و قتال میکند که تطبیق نظام شد این نظام اسلامی بیاید الله خیر سپاسگزاریم استاد محترم از که وقت گرانبه هایتان را ما دادین خوب شنونده های گرامی امید است که از برنامه ما خسته شده باشین الله در برنامه آینده باز هم استاد احرار بعضی معلومات های را ارائه خواهد کرد و در برنامه آینده بالای بینی بحث خواهد شد تا برنامه آینده که باز هم در خدمت شما قرار می گرم. شما را به الله عزوجل می سپاریم السلام علیکم و رحمت الله و برکاته گل های گل های خراسان آیا شما میخواهید که رادیو صدای خلافت را از بین ببرید برنامه فکری، تعلیمی و تربیتی بچه اکا دختارا که سطری میکنه خلاف اسلام است میتونی برای من بگی کش کدام کدام دعاها یاد داری؟ دعاینن خوردن، دعای از دعای, دعای کردن اینها اطفال شیران خلافتند اینها آینده درخشان خلافتند پیام برزویی است که بیاین به خلافت اسلامی و از گناهان توبه کنند بله، بله، اینها گل گلهای خراسانند که در کوههای خشک جنگلهای بی پایان و آوازهای های بتناک های سقیله به فکر و روحه اسلامی تعلیم و تربیه را به دست می آورند. با یک دستشان قلم و با دست دیگرشان شمشیر است. دیجه بمبوری باری یا جنگ یا صدای تفنگ و صدای بمی چیزارم نمی‌بی؟ نمی ترسی؟ الحمدلله. همین نسل جهاد در تمام دنیا قرآن را حاکم می کنند، الله، دلگفته های اطفال خراسان دو شبها از رادیو صدای خلافت مسلمانان گرامی این بود داشته های برنامه امشب ما تا فردا بعد از نماز مغرب که باز هم با برنامه های پشتو دری در خدمت شما قرار می‌گیریم شما را به الله عزوجل می‌سپاریم السلام و علیکم و رحمت الله و برکاته